چهارون توسعه امپراتوری برون جستم از تنگ ترکانچو دیدم جهان در هم افتاد چون موی زنگی چون باز آمدم کشور آسوده دیدم زگرگان به در رفت آن تیز چنگی سعدی شاعر ایرانی که در امپراتوری خارعزم شاه زندگی میکرد اشکرکشی چنگیز خان بر ضد خوارزمشاه از لحاظ تاریخی منحصر منحصربفرد است. برای نخستین بار رئیس دولتی از آسیای شرقی شخصاً تهاجمی به آسیای غربی را رهبری می‌کرد. این جدال که 5 سال به شدت ادامه داشت، دو ناحیه را به ستیزی سابقه با یکدیگر کشاند. در حدود سال 1218 میلادی که چنگیز خان تحریزی لشکرکشی بر زد خارعزمشا را شروع کرد، جاه طلبانه ترین عملیات جنگی که تا آن زمان در تصور خود گنجانده بود. سرداران ارشد خود را به یک گوریلتای فراخواند و در این گوریلتای از جانشین خود نام برد. چنگیز که در آن هنگام حدود 56 سال داشت با انتخاب جانشین خود موافقت کرد. زیرا احتمال داشت در خلال نبردی که به زودی در می کشته شود. از آن رو که مقلان سنت حکومت سلسلی نداشتند، یک پسر امو یا برادر نیز احتمال داشت که همانند یک پسر به جانشینی برسد. اما چنگیز به ایجاد وحدت در دشت پهناور اقدام کرده بود تا موقعیت خانواده خود را ارتقا دهد و می یکی از پسرانش جانشینش شود. چنگیز با وجود دلاوری نظامی جوچی پسر ارشدش او را انتخاب نکرد چون مطمئن نبود که او پسر واقعیش باشد. زیرا برت مادر جوچی کمی پس از ازدواج با چنگیز به دست مرکیت ها اسیر شده و مورد تجاوز قرار گرفته بود. چنگیز به جای او اکتای پسر سوم خود را که به حوشیاری و ابتکار شهرت داشت انتخاب کرد. سپس چنگیز پسران دیگرش را واداشت تا قول دهند که با حق جانشینی اکتای مخالفت نکنند. چنگیز با حل مسئله جانشین بلا فصل خود، ذهنش را روی تحریزی عملیات جنگی متمرکز کرد. آرامش قبل از طوفان در دشت پهناور فراخانی صورت گرفت و به هزاران رمدار فرمان داده شد تا در اردوهای چنگیز حضور یابند بین 150 تا 200 هزار مرد گرد آمدند و بزرگترین گرد همایی نیروی مغول تا آن زمان را شکل دادند اما این نیرو هنوز کمتر از نصف نفرات ارتش خارعزم شاه بود چنگیز از شاه قوم تنگوت خواستار سربازانی شد که او قول داده بود در صورت پیش آمدن نیاز فراهم آورد ولی شاه مزبور به او گفت که اگر به قدر کافی سرباز ندارد پس لایق خان بودن نیست. بعدها انتقام این توهین گرفته شد. سربازانی از چین تحت حاکمیت سلسله هان و از ایغورها به صفوف مغلان اضافه شدند. ولی چون شمار آنها هنوز کم بود چنگیز و مشاورانش نقشه نظامی نوینی را تحریزی کردند. آنها نقشه کشیدند که از چند جبهه به طور همزمان به امپراتوری سلطان حمله کنند تا دشمن را سردرگم کنند و سلطان را به این گمان بیاندازند که مغلان ارتشی عظیمتر از آنچه چه واقعا بود دارند چنگیز ارتش خود را به چهار لشکر تقسیم کرد لشکر اول تحت فرماندهی چنگیز و سردار ارشدش سبوتای بود لشکر دوم تحت فرماندهی اکتای و جغتای پسران چنگیز بود. لشکر سوم تحت فرماندهی جبه سردار ارشد دیگری بود که همراه با سبوتای از ایام جنگ های غبیلهی همراه چنگیز بود و بر لشکر چهار روم جوچی پسر ارشد چنگیز فرماندهی می کرد. هر یک از چهار لشکر برای یک جبهه در نظر گرفته شدند و نقش مهمی را در حمله ایفا کردند. هنگامی که یک لشکر به پیش می رفت منظری محیب ایجاد می شد. هر مجهز به اسبان بارکشی بود که در پشت صفوف تجهیزات و سلاح های اضافی را حمل می کردند. در عقب لشکر و در پشت دستگاه های محاصره و افراد ذخیره قطار شطاران حامل بار و بنی اصلی و گاری های پر از ملزومات و تجهیزات قرار داشتند. خیمه های کاملا سوار شده یا یورت متحرک نیز بر گاری ها حمل می شدند. به دنبال گاری ها گله های گوزفندان و بزها قرار داشتند که غذا و شیر برای سپاهیان فراهم می کردند ایجاد حراس جاسوسان چنگیز به او اطلاع داده بودند که بسیاری از بزرگ مالکان قلم رو خارعزم شاه زندانی معزول یا کشته شده او همچنین می که در حاکمیت سلطان از توده های مردم مالیات های سنگین میگیرند و آنان را تحت پیگرد مذهبی قرار میدهند. دهند. چنگیز کوشید تا از خشم و بدگمانی در میان اشراف استفاده کند. او همچنین از حراس مردم عادی به منظور بازداشتن ایشان از پایداری در برابر حمله مغلان بهره برداری کرد. افراد فعال چنگیز نامه های دروغینی را در دربار سلطان پخش کردند که در آنها از آمادگی اشراف تحت امر سلطان برای پیوستند به مغولان سخن گفته شده بود. هنگامی که خارعزم شاه آن نامه ها را دید ودگمانیش به اشراف و فرماندهان نظامی تشدید شد. سلطان ترسید که سپاهای خود را به فرماندهی واحد بسپارد زیرا ممکن بود فرمانده سپاه در صورت پیروزی در نبرد با او دشمن شود. در نتیجه سلطان نیروهای خود را پراکنده کرد و مغلان با نیروهای کمتری که بیچون و چرا به چنگیز وفادار بودند توانستند سپاه های سلطان را در میدان جنگ یک به یک شکست دهند انتقام از ولی چنگیز به پیروزی بر سپاه های سلطان قانه نبود انتقام جوی او تحریکش کرد که در تلاش برای واژگون ساختن امپراتوری سلطان تا جایی که می توانست غارت کند و ویرانی به بار آورد. لشکری متشکل از پنجاه هزار سرباز مغول شهر اترار را که بازرگانان در آنجا اعدام شده بودند، محاصره کرد. سقوط حصارهای شهر پنج ماه به طول انجامید و یک ماه دیگر طول کشید تا مغولان توانستند ارگ شهر را که سربازان و بیشتر احالی شهر به آنجا پناه برده بودند تسخیر کنند مغولها به وسیله منجنیقها تخت سنگهای پنجاه کیلوی و نفت مشتعل ساخته شده از ترکیب نفت خام، سولفور و نیترات پوتاسیوم که قابلیت اشتعال دائمی داشت پرتاب کردند و سرانجام هفره هایی در حسارهای دفاعی شهر پدید آوردند اترار خوب جنگی حتی در برابر مغولان که در جنگ محاصری استاد بودند. مغولان تقریباً تمام احالی اترار را از دم تیغ گذراندند، اما فرمانی از چنگیز داشتند که اینالچوق حاکم شهر را زنده بگیرند. اینالچوق را مسئول مرگ بازرگانان و فرستادگان می دانستند. اینالچوق و همسرش که مطمئن بودند محکوم به نابودی از تسلیم شدن امتنا کردند و هنگامی که عرق سقوط کرد، آنها به روی سقف اصلح خانه رفتند و در آنجا همسر حاکم آجرها را برای او می تا او آنها را به طرف تعقیب کنندگانشان پرتاب کند. مغولان با خراب کردن ساختمانی که آنها روی سقف آن قرار داشتند، سرانجام اینالچوق را دستگیر کردند. حاکم اعدام شد و اطرار به کلی ویران گردید. تسخیر بخارا هنگامی که اترار مورد حمله قرار گرفته بود لشکر دیگری از ارتش مغول متشکل از بیست هزار سوار تحت فرماندهی جبه با فرمانهایی برای از میان بردن هر گونه تهدید از سمت جنوب و عظیمت به طرف ماورا و به طرف جنوب ره سپار شده بود به جوچی نیز فرمان داده شد که لشکر جبه را دنبال کند و سپس از آن جدا شود و به پادگانهای خارزمشاه در شهر خوجند حمله کند. چنگیز و سبوتای با لشکر باقی مانده متوجه بخارا مرکز اقتصادی و فرهنگی امپراتوری گردیدند. بخارا که نام آن مخوض از بخار به معنی مجمع علم است غبه اسلام یا گوهر امپراتوری ایران بود. پزشکان و فلاسفه، هنرمندان و ستار شناسان محصلان و معلمان در آنجا گرد آمده بودند بخارا با قرار داشتن در امتداد جاده عبریش هم رنیمتی اقبا کننده بود تسخیر موفقیت آمیز آنجا می توانست دانش و فن را نصیب امپراتوری چنگیز کند لشکر اول ارتش مغل به فرماندهی چنگیز و سبوتای مغولستان را به قصد ماوراءنهر ترک کرد و عازم غرب شد و سپس ناپدید گردید طبق نوشته یک منبع گویی چنان بود که آنها از نقشه به بیرون تاخته بودند. در حقیقت چنگیز و سبوتایی در حال هدایت لشکر خود در راهی مخفی از میان صحرای غزلغوم به طرف مرز شمال شرقی قلمرو روح خارعزب شاه بودند. گمان می که این راه غیر قابل عبور باشد و سلطان انتظار پیش در آن جبهه لمیزره را نداشت. اگرچه جاسوسان سلطان او را در مورد سایر لشکرها متلع ساخته بودند، اما او از وجود این لشکر کاملا بی اطلاع بود. در ماه مارس سال 1220، لشکر چنگیز در 650 کلومتری داخل مرزهای دشمن ظاهر شد. احالی بخارا ستونهای سواران در حال پیشروی روی مغل پرشمار از موچگان یا ملخها را ناباورانه مشاهده کردند. بیست هزار سرباز سردرگم پادگان بخارا از دروازه های شهر به بیرون حمله بردند و کوشیدند تا با جنگیدن از میان مغلان در حال نزدیک شدن راه خود را باز کنند. آنها همگی کشته شدند. به گفته یک شاهد دشت تشتی پر از خون شد. احالی بخارا پس از کشته شدن سربازانشان دروازه های شهر خود را باز کردند و گذاشتند تا مغلان وارد شوند چنگیز سواره وارد بزرگترین مسجد شد و به تصور اینکه آنجا کاخ سلطان است فرمان داد مسجد به استبل تبدیل شود سندوخایی را که نسخه های خطی قرآن را در آن نگهداری می خالی و پر از جو کردند و عصب از جاهایی که قبلن متون دینی را قرار داده بودند مشغول خوردن شدند چنگیز احالی را مورد خطاب قرار داد و خیانت سلطان را شهر داد و گفت من عذاب خدایم اگر شما گناه های بزرگ نکردتی خدای چون من عذاب را به سر شما نفرستادی در حالی که مغالان مشغول غارت بخارا بودند و گاری های بار شده از کالاها و زنان و کودکان برده شده را می آتش سوزی تمام خانه های چوبی متصل به همه شهر را از میان برد. به زودی ساختمان های سنگی تمام چیزی بود که از شهر با شکوه گذشته باقی ماند. اددهی را اسیر کردند ولی گذاشتند تا بسیاری از احالی به خارج از شهر فرار کنند. آنها می توانستند همراه با داستانی درباره پیروزی اخیر مقالان به راه خود بروند. سقوط سمرغند مغولان امیدوار بودند که اهالی سمرقند هدف بعدی آنها داستانها را شنیده باشند و بدون جنگ تسلیم شوند چنگیز اعظم سمرقند پایتخت سلطان شد و اسرا بخارا را وادار کرد تا در جلو لشکر مغول حرکت کنند هنگامی که اسرا به شهر سمرقند واقع در ازبکستان کنونی نزدیک شدند تعدادشان باعث شد که لشکر مغول حتی بزرگتر به نظر برسد با اس ایران سپری انسانی در برابر تیرهای دشمن به وجود آوردند مغولان که از استحکامات سمرقند اطلاع یافته بودند برای محاصره طولانی آماده شده بودند اما شهر تنها ظرف 5 روز سقوط کرد مغولان هرگز شهری را همانند سمرقند سرشار از میوه ها و کالا های خارجی و چنان ولخرج ندیده بودند مغولان هر آنچرا که ارزشمند بود تصاحب کردند سرده‌westه اهالی بستگی به پیشه ی آنها داشت تمام سربازان سمرقند به قتل رسیدند مغولان زنان را مورد تجاوز قرار دادند و سپس آنها را نگه داشتند یا به عنوان برده فروختند روحانیان و دیگر مردان مقدس بخشوده شدند تمام افزارمندان و صنعتگران شهر به غراغوروم در مغولستان انتقال داده شدند تا در آنجا در دربار چنگیز خدمت کنند گزارش ها نشان می که پس از تهاجم مغولان در سال 1220 میلادی هفتاد درصد از جمعیت سمرغند کاسته شد فردی متخصص که گمان می رود پس از تسخیر سمرغند به دست مغولان اسیر شده باشد اتا ملک جوینی جوان 27 سالی ایرانی و اهل امپراتوری خارعزم شاه بود جویینی را سرنجام به قراقرون بردند و در آنجا در دهه 1250 میلادی تشویقش کردند تا تاریخ فتوحات مغولان را بنویسد امروز تاریخ جهانگشای جوینی یک منبع های اطلاعات درباره امپراتوری مغول است شاید به این علت که جوینی در خدمت مغولان بوده است از این عقیده که مغولان معموریتی آسمانی داشته‌اند پشتیبانی کرده است جویینی با نشان دادن اطلاع خود از روایتی از مسیحیان که نمایندگانی در دربار مغل داشتند، اظهار عقیده کرده است که مغلان سواران نبردی هستند که تی آن شر نابود می‌گردد. روایتی از روایات خداوند به ما رسیده است که می‌گوید: اینها سواران من هستند. من به وسیله اینها انتقام خود را از کسانی که بر ضد من طغیان کردند، خواهم گرفت. و نشانی از تردید وجود ندارد که این کلمات اشاری است به سواران چنگیز خان و به قوم او جووینی ماننده اده زیادی که کشورهایشان مورد تهاجم مغالان قرار گرفته بود پیروزی مغالان را به کیفر خداوند تشبیح کرد در جستجوی سلطان و پسرش خارعزم شاه پیش از رسیدن مغالان به سمرغند از آنجا فرار کرده بود بنابراین چنگیز سوتهایی و جبه را به دنبال او فرستاد در حالی که خود و جوانترین پسرش تلوی به تعقیب سلطان جودین پسر سلطان که او نیز از شهر گریخته بود پرداختند. سوبوتهایی و جبه حدود یک سال سلطان را ایالت به ایالت دنبال کردند ولی سلطان پیش از آن که آنها بتوانند دستگیرش کنند در اثر بیماری درگذشت. هنگامی که جبه و سوبوتهایی به دریای خزر رسیدند، این جستجو به یکی از بزرگترین معموریت های بازدید منطقهی برای کسب اطلاعات نظامی در مورد دشمن تبدیل شد. جبه و سبوتای و 20 هزار سوار که مسممانه می بدانند که دورتر در سمت غرب چه چیزی وجود دارد به سفر خود ادامه دادند. این گروه با زندگی بر پشت اسب و به دست آوردن عصبهای تازه نفس از طریق نبرد دو سپاه را در گرجستان شکست دادن و در زمستان از کوه های قفقاز عبور کردند و در دشت پهناور روسیه بر دسته ای از قبایل ترک غلبه کردند روسها به پخش خوشدار در سراسر امیرنشین ها پرداختند و اقدام به گردآوری سپاهی 80 هزار نفره نمودند تا با مهاجمان بیگانه بجنگند اما این سپاه حریف مغولان نبود مردم روسیه هیچ چیز درباره مغولان نمیدانستند از جبله این که آنها از کجا آمده بودند یک راهب روسی شهر داده است غبایلی ناشناس آمدند ایچ کس نمی که آنها کیستند و از کجا آمده و زبانشان چیست و از چه نژادی هستند فقط خدا می که آنها کیستند و از کجا آمده هنگامی که جبه و سبوتهایی به نزد چنگیز در دشت پهناور آسیای میانه بازگشتند سیزده هزار کیلومتر سواری کرده بودند و کاری را انجام داده بودند که میتوان ثابت کرد یکی از بزرگترین شاهکارهای سوار نظام در تاریخ بوده است. بدبختانه این برای روزها آخرین حمله مقالان نبود. مسیر پرویرانی تعقیب جلال الدین پسر سلطان سالها از دستگیر شدن گریخت و چند تلاش برای گردآوردن آوردن سپاه های از مقاومت کنندگان به عمل آورد. از آنجا که مغولان جلال الدین را در بقایای امپراتوری سلطان تعقیب می‌کردند و شهرها را در طول مسیر ویران می‌کردند، در ادبیات فارسی از او به صورت شخصیتی با اهمیتی قهرمانانه یاد شده است. چنگیز نمی‌خواست که هیچ شهری را سالم بگذارد تا پناهگاهی گردد برای دشمنانش. بنابر این هنگامی که او و تلوی که به بی‌رحمی شهرت داشت جلال الدین را تعقیب می‌کردند لشکر خود را در مسیری پر ویرانی و شبیه خط سیر گردباد از میان ایران افغانستان و پاکستان کنونی حرکت می‌دادند وقای نگاران ایرانی از ویرانی شهرهایی همچون موو گزارش داده‌اند که در آنجا طلوی بیش از 700 هزار نفر را به قتل ساند و تنها 80 صنعتگر را بخشید اما پس از خونریزی بسیار در مرو به گفته ی به ازدین نصابه از سادات کبار بود و در این حالت با جمعی سیزده شبان روز شمار کشتگان شهر کرد. آنچ ظاهر بود است و معین بیرون مقتولان در نقبها و سوراخ ها و رساتیق و بیابانها هزار هزار و سی هزار و کسری در احسا آمده. شهرهای دیگر از قبیله نیشابور و بلخ نیز دچار همین سرنوشت شدند. ویرانی این شهرها باعث شد دیگر هیچگاه به شکوه روزگاران پیشین دست نیابند. شهر حرات در ابتدا هنگامی که مغولان آنجا را در سال 1221 میلادی برای بار نخست تصرف کردند، امان یافت. اما چندی بعد که اهالی این شهر بر ضد مهاجمان قیام کردند، مغالان بی به کشتار آنان پرداختند اگرچه جلال الدین هرگز دستگیر نشد ولی ملت او بهای سنگینی پرداخت نتیجه جنگ. چنگیز خان پیش از بازگشت به مغولستان ترتیب اداری سرزمین های تسخیر شده را معین کرد او حاکمانی را منصوب کرد که به عنوان نمایندگان شخصیش در شهرها عمل می کردند. همچنین شیوه هایی را در زمینه وز و عقص مالیات مقرر کرد. ناکامی مغالان در داشتن حضوری موثر در چین شمالی بعد از پیروزی اولیهشان اشان بر سلسلی چین باعث شده بود که دشمن سرزمین تسخیر شده را به آسانی باز پس گیرد. مغالان از اشتباهات خود درس گرفته بودند. پادگان هایی که مغالان در غلم روحای تسخیر شده در پشت سرباقی می گذاشتند اگرچه بزرگ نبودند ولی با توجه به کاهش جمعیت و حراس احالی این شهرها از مغالان کافی بودند. چنگیز همچنین چانگچه اون حکیم تاوگرا را از چین فرا خاند و شاید با اطلاع از مرگ غریب الوقوع خود با او در مورد امور مربوط به فناپذیری و دین مشورت کرد. چنگیز به عبس امیدوار بود که چانگچه اون که بیش از هفتات سال داشت و به کهولت شهره بود راضی برای طول عمر داشته باشد او به پند مرد مقدس در مورد چگونگی حکومت بر مردم و جایز دانستن مدارای دینی گوش فراداد و عمر کرد تعلیمات چانچه را بنویسند چنگیز و افراد او در سال 1225 میلادی هفت سال پس از آنکه برای نخستین بار آزم جنگ با خارعزم شاه شده بودند با حرکت دادن صفوف طویل بردگان به دست آمده در کنار کاروانهای پر از غنائم جنگی دیگر شامل طلا، جواهرات، ابریشم و انواع مسکوکات به مغلستان بازگشتند. چنگیز با وجود سروتهای هنگفتی که از طریق حملات متعدد خود اندوخت تجمل را نکوهش می کرد و برخلاف جانشینانش، تغییر وضعیتش تأثیری بر شیوه زندگیش نگذاشت